بسم الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله سميع عليم في الدائمة على الدائمة. بس اصلا در رشوه بود از رشوه منتقل شدن مرمون شکل تو بحث قاضی در غیر رشوه که چند اونوان را متعلق شدن به این مناسبت کفتیم که روایات مقام خونده بشید در این که رشوه حرام اینجای بحث نیست را به این عنوان با عنوان رشوه به تنهای از رشوه تفل حکم در باعتمان با عنوان رشوه تقلیه یا لحنه لاحظه هاشی برمورتشید در مسادر معروف ما در مسادر ثانیدی که به اهل بیت که اون تحیل میشه ما نداریم لیکن خوبشه این مشغوله احرسانت نهار کردن البته اونقدر مشهور، مشهور نیست شد در مسادر درجه که اونها نداریم اما ارز شد که تدریجاً بحثی به نام رزق قاضی از بیت المان مطرح بود بعد اجرت قاضی مطرح بود و بیروز یک سری در اقوال اهل سنت و تاریخ اون ادوار انجام کرد حالا درستیم به اقوال خود طاقه در روانیات ما اصلیه اولا مثلایی که خود رسول الله قاضی که این در آیات مبارکه هست و در این تعمیر المومنین رو به غمبر فیرستن برای حضارت توی یه مسادر اهل سنت اسامیده تراغان دارد. به نظر من ما هم داریم الان نمیتونم نسیح سرنشون که این مقیده به یه سند صحیح تو کتوب ما مشهور هست تو روایات ما اما آیا سند صحیح به اصطلاح و کده مفتر داره الان تو ذهنم نیست پس اصل جعل قاضی تقریبا می که تقریب و حاضر اون چی که مفتر بوده من که در روایات خودمون نیدیم که تقیقا برای اکرام برای قاضی اجرت که قرار داده باشن این که در روایت ما در برایات آمه هم کن مسئله اجرس و قضاقه از زمان عمر مطرح شده هم به لحاظ اینکه ایشان کار رو انجام داده به قدر قاضی توی قرار هم به لحاظ این آین که نوشته در اون نوشته رو خودش گفته که رز اشکال نداره بلکه ایشان زیاد بدین تا اینا مستحنی بشن و حج رو گفته لاینده کلمه اجرس رو لاینده ا شد که شبیه کاری که در اینجا از عمر نسبت داده شد در مجموعه روایات به اهل سنت و ما در مجموعه بهلیه دریزار هم نسبت داده شده مثلا نسبت داده شده برای برای رسی قرار داددن نسبت داده شده که امی و معامولین در نامه ای کهمال بیشتر که به او که تا م مردم باشیم و باز در کتابی نسخه ای از کتاب جفریات یاغوط به منقازه و رزبند قاضی مسئله رز آمده این نسخه جعفریات هم در اختیار داعام بود طریق ما نسخه هم در نسخه ای که ما الان داریم اینم آمده آمد و مسئله اجر قاضی هم در کتاب دعایم ام آمده ک حرفره سلام یا ک حره اسلام یه خود غذا عجره مضمون کلا در این جعفریاتی که در اختیار ما هست این مضمون نیومد در که در اختیار ما هست این ترههر قاضی نمید اما در جعفریاتی که در اختیار ما هست این جعفریاتی که الان ما داریم که در این کتاب جعفریات از کلم این کتاب کتابه. کتاب، کتاب است یک کتابی در جعفریات است نیم کتاب و تفسیر من چند بار عرض خدمشون نقطهی در داره، مثلا خود مرمو استاد این کتاب و تفسیر مبانی اشکال میکنه، همون تو ظاهره تو مصلاح قروردند توی کتاب و تفسیر جعفریات این آمده و قرض تا اونجایی که ما الان خبر داریم در هیچ یکی از روالات سنی و شیعه این مقدار عدد صحت نیومند این هم بیست داشت بیست خورده ایج ده دادن ایفت خونگیو همشون خوندیو. شمارش هم کردن تکرارم توش دارید این یک قبایت بسیار کامعه است که درش انراع صحت ذکر شده در اولین قبایت اجرالغازی رو از صحت حراره ده پس در حقیقت ما از امیر راجع به اجرالغازی داریم همچنانی که از عمر هم راجع به عصر و قاضی نحقی شد و لکن این نقل از امیر المؤمنین منحسده به کتاب جرقیان در نسخه دائم کرهه داره در نسخه ما داره منصف اصلا این روایت مفصل صح تو دائم هم نیامده من از کردم یه روایت بسیار مفصلی در اخسام صح که جای دیگر ما نداری ما چند جور روایت در صحب داریم که این مفصلی منحصه در جهترین هستیم باید تو آخرش هم داریم از وقتی از صحب از رشدات و فیل حکم هم داریم هم رشده در حکم یا رشده در حکم روز به صحب قرار داریم هم عجرال قاضی رو به در صحب قرار داریم کما این که در آخرش ها پر بیادن رفته که فقط قاضی یا حاسب میگه اجر نگیر اما لا بقدرت ان یجلا رزق من بیت المال رزق اشتباه باشه خاصا بر این فرق بین رزق و اجر باید گفت در مصادر ما و در مصادر اهل سنت از زمان صحابه شروع شده خیلی هم متواربن با هم نمیدونم چرا از این عبارتی که گفتم اینه که از اول استفاده شده اما اباضیون از این مخصرات راهی که از دارند در این دیده بسیار ما لعبی بکت فقط در هم بود عبی بکت و عمر حالی شوی که نروی کردن انا لا نقولو انها بهی من کتب علی ابن عبی طالب بود از قارات ولکه نقول انها بهی من کتب عبی بکت صدیر کانت اند ابن محمد فنهنو نقضی به ها و نقصی چون محمد عبی بکت بعد با عمر مؤمن شد ما میگیم اینها مال عبی بکت به هر حال این مطلب مطلب عجیبیست که در این مطلب هم سنیه ها و هم شیعه ها و امیر مومنین سوام الله علیه رزر رو اجبر قاضی اجازه دادن و عرض رو اجازه ندادن این امی کار هم در کتاب اهل سنت هم برد عرض شد دیوزه اگر اون اقوال درست باشه شون من ارزکن رو برد بکنیم اهل سنت بعدها حتی اگر او می مسئول نسبت داده شده بود او را با سرد بررسی میکرد. مثلا می گفتن او بیان ابن مسئول ولن میاسه. یا از سهن ابن مسئول از نهو کار نیم قول رو کدن. از آن تو ذهن هم میزید. این مطلبی دیگه از ابن مسئول نهم کردن صحیحه یا صحیح نیست. از ابن مسئول هم نهم شده. و از عبارت موقعی معلوم شد دردها مثلا قرن سربان و چاران. لا نعلم و خلاف همه اتفاقیش من خود اهل سنن اتفاق اهل سنن شد که اجرت جایز نیست و رزق جایز نیست نه نه نه خود اونان همه حالا آیه حادث این آجه به اهل سنن در کلمات اصحاب ما این یه نکته خیلی لطیف در این جمع من نمیشه اجمالا این رأی که از ابن مسعود رو از امت خود عمر نقل شده بود این ورد در زمان کوههای های اهل سنت قائل فراوانی پیدا کرده که عجل جایز نیست و رزق جایز این نقطه خیلی ذریفه که چون خیلی اصلا کردم که اصلا که در روایات ما اون که به امیر المؤمنی نسبت داده شده به استثناء اهلنامه ایشون به مالک اشترکی هست در حوضه های ما متعارف شد به خاطر نقل سیدرزی و نحیل بلاغه و بعد استاقاستان فرمیشان توحفی لغو توحفی لغوی در حوضه های ما معروف نشد توحفی لغوی در حوضه های معروف شد لیکن بقیه یه مسال و امیرمون در حوضه های ما معروف نشد این که ریلس جایز است و عجل جایز نیست این تو کتاب های ما نیامد چرا؟ چرا از کردید این یا در دائم بود یا در جهتری ها هر دو از میرازهای مصری ما بودن جهتری ها چند بار به حوزه های ما آمد اما تلقیه به قبول نکرد و مشکور نشد جز این بار آخری این رو سه هندی این رو سه تلقیه به قبولی چه هست شد هست داری بروشه گرم یه الان تو حوضه ما نهار میکنم پیشو 10 اما ضاهم الاسلامی که این اواخر آمده. یعنی بعد از این مستدرک شد باحال هم نوشته باشه ضاهم الاسلام کتاب ضاهم الاسلام در یک زمان خیلی متأخری وارد حوزه های ما شد و اصولاً این دو تا میراث علمی مصری ما خیلی دیر وارد حوزه های ما شده. خیلی دیر درست می‌کنه و در غیر ها الان رسما بین این عنوان مانند بل رزق قاضی رو ما داریم در روایات داریم کلمه رزق در روایات خودمون داریم اما این عنوان اج رو فعلت نداریم و نصد به روایات ما خب یکی از احادیث مشهورش انقاض بین قریفه یعنی خوضا على قضا من سلطان فقاله که سلطان که از در کافی هم در فقیه هم در تحیل آماده ظاهره ظاهره شاید نه کافی این باشه که رزق و عنا حضرت بیادسه میخواد بگه جایز نیست ظاهره میگم چون ایشون عنوان با با اخذ اجرت و ور شافل خوب عنوان بابش این قرار داره نمیفرمایید حالا چون ور شافل خوب که حرامه است خود نظر ایشون اینه که اجرت هم مثل شافل خوب حرام اما نوایت که واژه يا خدا بنا سلطان القضا از رز چون گفت عنوان رزق اجرت میگیره و ما از کردیم یه مرحلهی داریم در فکر خود ما که اهل سنت ندارن و اون مرحله انتقال از نصوص به فتا باز. که از کردیم از کتابیم نسیح خوب ما در این جهه کتاب فقه و رضاست یکی از اجایب اینه که اصلا فقه و رضا متصدی این نصورت کلن نشده اینا خیلی ارچین خیلی برما تعجیب آنه نه رزق رو و نه اجرت رو داره خیلی عجیبه در فحور هر دو نیامده. نه مسئله رزق را یا جایز هست یا نه و نه مسئله اجرت این در کتاب فحور که که الاماداری در کتاب بعدی کتابی که مثلا من با مثال دیگه فقط این نصوصا تصوری منلای حضور حال در کتاب من از زرکه همه رفت آمده یه افضا من از سلطان ارقضا عرض قال لالت سهتم و که ایشون در اون با حالا کلیدی چند حدیث نهر کرده اما میشه دیگی نهر اما ایشون مرحوم شیخ صدو در اون با فقط یه حدیث نهر کرده اونم حدیث سلام. نسنه هم عنوان من در باب و کراهیه تأخل و رضا از خیلی ای اچیم این هم خیلی ب با این که روایت تصریح می کنه زالکت سخت زالکت سخت بعد ایشان تفسیر کرده به این که کراهیت و عخذ رزق منو خیلی عجیبه دو عجرت می گفت محبوب بود کراهیت <تصفيق> و عخذ رزق عدر قطع روایت رو همده بر کراهیت کرده که نمی دونید دقیقا حالا هدف ایشان عظیمه یعنی احتمالاً مختی دیگر و دیگر مفضوله خود این روات که ظاهرش در حرمت شدید هم پس الان در روایاتی که ما داریم رشافل حکم رو داریان بعدیان یکی از این روایاتی که در رشافل حکم چون چند تا روایات در صحب داریم یکی مال سماعت یکی مال امارز و مروانه یکی مال سکونیه در یکی از این موتونی که داریم یکیش اینه منه ها ما اصیبه منه اعمال بلاد زلمه و منها ها اجور رو گذار این هم در مفصلی که در تقسیم سخته تو یکیش این مده همه و منها ها اجور رو گذار که این تمسای کردن که عجرالقاضی به اصلاح حرامه، نکنه وکن توضیحش به احتمال بسیار قرمی این ناظر نازل به ما اصیب من اعمال ولات زلمه یعنی ما اصیب من اعمال ولات زلمه منها اجور خدا کدوری که قاطم بگیم اگر این درست باشه این وجود اینجا ام اعت رزقه چی مخاطر رزقه باشه؟ مخاطر رزقه و منها اجور خدا امن میشه از این که رزق باشه یا رز این راجب این مقدار حدیثی که ما داریم در این به اهد خسابا هم فقر و نداره از این کتاب صدوق پدر هم فعلا من نقل قولی ندیدم چون اون کتاب صدوق پدر به ما نرسیده میگه این نواری زیاد تشاغون با و رضا داره و رضا که نداره ما بیشتر راهمون اون به کتاب صدوق پدر طریق محوم علامه در مختلفه میگه قال علی اون رسالتی اینجا هم علامه مس مسئله رو متعرض نشده در مختلف چیزی که من نگا کردم امره علامه تعرض اخذ اوجر و قضاوت هم نشده تا وارد این بحث نشده علامه شاید هم سرشون این بوده که بین علما اختلاف نبوده اتفاقی بوده چون کتاب مختلف و علامه از علی و در اصطلاح موارد اختلاف شیعه نشه به حال از خطاوای علی بن بابوی هم چیزی در صدوخ که تقریبا خب میشه که این تقریب رو نسون سدیه یا نمیشه که حقا انتقال هم در مقام تعبیر بوده کراهی از رزق ادام قضا این به اصطلاح در توجه که در مکتب پوم بود چون اینا رو با دیگه و یک نکته ای را میخوام در آخر میگم حالا از اینجا اشاره میکنم به نظر ما اگر دیدیم که ادمای اصخاب متعرضه به اصطلاح مسئلهی نشدن یا نیوردن یا مثلا سه مثل همینجا اختلافی کردن این احتمال بسیار بسیار قبیه که تقرد میکنیم این احتمال بسیار بسیار قبیه که دهنده این باشه که اصحاب ما در این مسئله حالا این بعد بعدی آشهاش متعرض میشیم این مسئله نشون در این است این خیلی لطیفه. است هیچ نشون دهنده این باشه که اصحاب ما توی این مسئله یه تلقیه واحد نداشتن همین تازیگی پروز بگیم ما اگر جای اصحاب ما تلقیه از معصومی داشته باشن اون برای ما ارزش نداشت اما اگر تبنی باشه اشتهادار باشه رعی باشه خب هم رجال و نهنا وقتی در این مسئله ای کناسا روایت به نظارات و حرمت میاد ترسوم میده به کراهن معلوم میشه تو این مسئله تلقی نبوده خوبه پسیم کنه یک رأی اجماعی تلقی که این مورد قبل از ما باشه این چی این چیزی نبوده اون چه که بوده استظهارات بوده مثلا شاید کلی از همون رواد استظهار کرده مراد ازاره یعنی اجرده تقریبا از کردیم مرگوم صاحب و سال هم همین معنا رو ترمودید تصریح می کنم می گذرد اشکان از, اش از سلطان، اوجت کرد اجت از صرفان اشکالی این راه هست شما ما بتونیم بدیم این تظنیه یا این یکی یکیش راه زیادی رو دیگیش هم ما عهد نصورت رو داریم میگن به و انتخاب بعد میهن به فتابا متعددن انواع مختلف فتابا این نشون میده چی؟ نشون میده این طرفی نمیده حالا یه بردار عبارات رو به اصطلاح میخونم تا ببینید از <تصفيق> حاله که هشته هستیم واجب هستیم خوصوه نامه آه این ای نا. نا. که ماله خوصوه نمیه ما دو که ما شحبت ما هم هم همون نامه چند که لازم میدونم پس اون که حرام دوستن رزکی که از طرف حاکر و جاهر باشه خب میاد اون. همون بحثه که خب رو مال عباده من بخونم. در مکاسب مغنه افید شیخ صد مفید که ایشان از بزرگان از و انصافان هم میتونیم به اصطلاح قبولش بکنیم. در کتاب مغنه شیخ مفید ولا بعث بلعجر علل حق و غذا بینن ناز ایشون تعبیر به عجر کرده ایشون و تبرع و که امزر و اقرب و الله سعال را مرحوم در نهایه خیلی عجیب و بلا بحث به عجل مگر این که بیشون رو داره رزق رو به عجل کرده در کتاب نهایه داره بلا به به عجل و رزق عجل و رزق, رزق رو سعورده عدل حکم و قضا بین الناس و بعد ایشون که منجرد سلطان ال آقل حتی ما قدم داره من فلا اند دا، اند دا عرخو، عرخو، عرخو و اما منجه سلطان الجو ضروره ما و تنزه اخذ رزق الازاله که جمعیه لأحوال حالا این که رو که فرموده شبیه همون فتواه صدوقه کراهیه و اخذ رزق شبیه همون چون تنبوه از کلمات دیگری که در اینجا داریم شش در بحث کتاب سلاف در بحث خضا در کتاب سلاف این داریم حساب قضا این طور می‌فرماد شیخ از جانان باطاله علی که اشاره خواستم حاکم علی اخدر و اجر تعالی حکم او من احدهم هم سبحان کان له رزق بنکمال اولمی اصلا اجرت او شیخ اجازه نمی دهند و قال شافعی کان له رزق بن بیت المال لمید. هما قلما و من بیش از ما، یازدهو احذار اجتهال از آن، من صافیم مطرحش شدند که تعداد مبانی به علمای زیادی که میان تصادف داده میشه که دکتر ما مهلت اختلاف روشن میشود. دلیل آن، دکتر سوکانیم، عموماً اخبار علوازی که آن نه. یه رو القاضی حضر قاضی اخذ و رشا و رهداری ها رو جزو عنوان رشا و هدایه گرستن و اینجا کنم هیچ انسا برمونه از نظر علمی فهم میکنه رشا که خود بگه انسا بنافر کسی حکم میکنه ها یه یک خود تو انسان تبرائی میده اخذ اجرت در قضا این نیست ترارداد باش میگنه تبرائی نیست میگه آجا من قضاوت نمیکنم کنم من طبیه هستم از آران نه میشه دیست هزارت پس این نه عنوان رشاد هایی نه عنوان هدایه رکیه خیلی عجیبه به عنوان اوجرتی که قاضی طلب میکنه برای قضاقه نه عنوان رشاد نه عنوان هدیه فنه هو یه رو معلق قاضی از رشاب و حالا داخل امفیداده و ایمان طریق اصول احتیاط تقصد سمجر احتیاط عمل میخوند و ایوان اجماع اون فرقه قیل از آده اخبار اجماع فرقه هم هم هم لایخ فرقه که فی انه ذالکه حرام هم این هم این هم این کار از اون برشمسی نهایی میگه یجوز و اخت و در اجل مفید در موقعه میگن. یعنی یجوز و اخت و باز میگن اجماعی به این که جایز از کلمات دیگری که در موقع ما هست در کتاب مراسم فهم المخروف فعال کسب رو نوح علا اهل الدین به هم و کسب رو هجیان وله عجو علا قضا و این ناس احتمال داره کلمه این هم ناس وله هم نازل باشی به ریز بیر تحبیر به اخت که و در کتاب ابن براز محضر را کس و حجان ولعنج و علب غذا و تنفیز الاحکام نقبل امام عادم پس که از طرف امام زندانبانه برای تنفیز احکام پول میگه اشون میگه که جایز نست در کتاب سرائل ولی ارتشاع ولی احکام ولی غذا بین الناس و اخذ به اجرات علازانه ایم این انصافا عبارات می‌خوام چند رشوه و اخذ اجرت و هر دو حرام دانستید ولا درس در اخذ رزق از طباق من جهت سلطان العادل و یکون ذلك من بیت المال دون الاجره الا که هرچی نخیران چیز فرهم روایاتی که از عامه نروش شده توش شراحت نورد نگر باز بگیم اون کراه تر اون شامل اجرت هم بشه شامل رزم هم بشه این هم از کلماتی که به اصطلاح از علامه در کتاب قوائق می و تحرمون اجره علیه و علیه قضا و یه روز و اخذ و غزق علیه ما من, من بیت المال در جمعه مقاسب عمل امال قضا فره نفس وره اجماع ولا فرقه این حرف درباره عزت و متخاصمی او من السلطان و اهل البلد الا این حرف چی؟ مرحوم چی انصافا بدی نیست در اونجا محاسس که اخذ عزات فرغ از مردم میگیره از متخاصمین و سلطان باشه بعید نیست به حساب التقاضی برشید ببین روایتی که می‌گذر از سلطان اون روایت شامل اجره بشه نه شامل ماهانه این که باقید شامل ماهانه بشه خلاف از باید باید سوا میکنه اجاره دیدن او جائرن سوا میکنه به اجاره و جاله و اطلق بعض الاسحاب جواز ال اخ و مصنف فیلم مختلف من نیلیم رو مختلف آد انتحیین القضا علیه اما به تحیین امام او به فرد ریده او به کونه الاخذر و کان متفکنه لمیه جوز الاجواله و این لمیه تعین اوکان محتاجه فل اغرب ال کلام راجع به این مسئله خب معلوم در این مسئله ما غیر از حالا ادنوان روایه روا... و غیر از حسابه که از ما دارند دو مورد ادعای اجوام هم شده یکی در خلاف شیط توسیز و ایران اجماع الخلق یکی هم در عبارت بله مرحوم جامل مقاسه اما ملقضا فل و اجماع وکه با این توضیحاتی که ما الان خوندید و روایاتی که کلام ما خوندید ادعای اجماع در مسئله واقعا خیلی مشکله معلوم شد که ما به اصطلاح در این مسئله اصولا فقط اجمع نداریم یه شهرتی هم که بخواد مثلا این که داشته باشی، که شهرتی با هم نداره ایشون در مختلف نقل رو من فردا مختلف اگر در چیز بود نه رو هم توی قضا مختلف نبود اما ایشون در اینجا نقل کرده است از کتاب مکاسب مختلف مختلف این شبه مقاصر مختلف رو مردم نگاه بکنم اگر به درست خوردون مثلا تازهی داشت خدمت آره ارد می و اما یه عبارت دیگه ما بخونیم و بارد بحث اون بشیم در تخاب محسود این کشه قدسال آنمسه در نهایی چیزی میگن در خلافی چیز میگن در محسود این نکاتش سابقا ارز کرده آله اما مایه روز و یسته جره علیه و مایه روز ف في لي و جملته که کل عمل جاز که افعله غیر از غیث هر روان جازه که افعله باعث اجراش و کل عمل نه افعله غیر و اضافه افعله نفس و جاز رزق این این تقسیم بندی که دقت رو که میگه یک کتابی که فقط خارج شده به احتمال قوی من در کتاب محسوس هنوز عقیده اینه اصل کتاب یک کتاب در سفر شافعیه بوده چه این کتاب رو گرفته فرد مسئله از شوافر گرفته یا از اهل سنت جوابشه اشیئه داده این یک مندی است که به کلمات اهل سنت میاد اون لذابطش اینجا میگه میگه شما میتونیزه عملی از غیر انجام بدیم لذابطون و این عمل برای غیر واقع بشه میتونی؟ اگر تمنیشینه انجام بدینه برای غیر واقع بشه پول میتون دو عمل رو انجام بدینه از غیر واقع نمیشه اما نفرش برهیب مرسه میگه این هم اش... اشکار نداره پول نمیشه عملی که انجام میدین از غیر اصلا واقعی نمیسی نما زرکی میخوییم برای کسی حساب نمیشه این نه اجرد میشه در برسنش پس اگر شما عملی انجام دوید این عمل برای غیر واقع شد او بگرس میکنه این خودش منطقه هسته میتونیم خود در مقابلش اما اگر خواهدی قضاوت کرد این قضاوتی که کرد در خودش حساب میشه برای سلطان که حساب نمیشه اما میگه اگر این طوری بود دقیق اضافه ادافه الهو ان نفسه عاد نفعه الالغیر نفعش به غیر میاد جاز اخذ و رزق علیه دون از اجوره کلقظاه و خلافه و امامه و امامه و ازانه و جهاد. این نظر مرحوم شیف در محصول که از کلم به اینه کلمات آمنه است و حال رونای جز اخذ و رزق علیه حالا این ظاهر بچیم شده و اجازه اصحاب ما راده بگه اجیبه لیکن اصحاب ما اجازه داده و اجازه قومون اخذل اجرس علم قضا روی قضا هم میتونه اخذل اجرس بطاره با هم فاسدونه این لنا و کنه حالای فعله و اغیر و اغیر فعله هن نفسی لم یعود لم یعود لم یعود اخذ اجره علیه ولا اخذل راید اگه اینه بعد از بهتر شد پرشند تو میشه تقسیل بندی که این تقسیل بندی آب غالباً ماله اهل سنتیم نه طور آلات ما هستند در فتا ما. پس سه جور عمل میشه پرشند یک اگر شما از غیر انجام بدین برای اون واقع میشه این اوجاز هم که این رضا میشه دو اگر انجام بدین از اون واقع نمیشه نفرش به این بر نمیرد. وقتی دیگه غیر تکریح نداره. اینجوری میگه میشه اخذ اجرت ایشان نذاره. نفرش اون بره. اجرت نشه، اجرت نمیشه. سه اگر انجام داد نه برای غیر میشه نه نفرش اون بر میاد. مثل من نماز ظهر رو میخوان برای خودم. نماز ظهر رو خوندم نه برای دیگری واقع میشه، نه منشأ میشه که دیگه نماز ظهرش نخونه. منم خوندم را میگی اینجا نزد اینجا روشه نباید میشه پس به صورت من این بحثم اینه این صورتی که بشون فرمود، بسرورا صورتی صورت باید ما نهامده تو کلمات از خواب ما قبلش شیخ هم نهامده باکر محضرش هم بزنید مهلا ممکنه کسی بگه صورت ممکنه کسی در صورت دوم سوال دوبان ایشون میگه رزش اگر نفعش بول برگرده اما امر رو ساخت نشه رزق میتونه بگیره اما اجر نمیتونه بگیره اما اجر نمیتونه بگیره چه مشکل داره مادام نفعش بول میگره کافی بار و کل ما لا یفعلوه و انلغیر یفعلوه و انلغیر اضافه علوه و اننفس لم یاد نفسه بله لم یاد نفعه, نفعه, نفعه و الالغیر لم یا جز اخذال اخذ علیه که خلافات محفوظ و کتاب و کتاب کنیان، فا از هر تا آن نه یا اخلاق ریز، نه من بیت ما، ما از مساله. یشود همه ی تابی کرد، یک یک جایی گذاش مذهب من شیش دکتر به شنار تابی ما خودم. برای چیم صحب نداشتن بری گرفتن این اجرت از طرف از خود شهر و دادنش دادنش از طرف حاکم جاید حرام هست حاکم نظامی قاید بده ولی برای گرفتنش اون طرف اگر از ماکن اصطنامی هم خواسته باشه بگیره از این ناییتت بکنه مکروه براش چرا؟ از سلطان بگیره حرام هست چرا؟ را چیم بدونی؟ و وقت قصد رو در کتاب قضا از مفصوط این طور و اما من یحیل لهو اخضر رزق علیه من لا یحیل و امن القاضی اما ان یکون من من تعین علیه قضا قولمیت ف فه امکان من من یک جوز لهو القضا قولمیت اعین علیه فه اما ان یکون له لهو اولا کفایتون فه این لم یکون لهو کفایتون جاز در اخضر رزق و اینکانت لحوک کفایتون فرمستحب ان هم لایه خود این جاز و جواز و احضر رز و اشما وله هم نفیتر مال و هادا من هم این تعین ان یکون لحوک کفایی اولا کفایت داری فه اینکانت لحوک کفایتون حرم احضر و احضر رزن او و تعین عليه. یعنی واجبون در منافیس با گرفت نخزه و جن و اینلم میکن در اون کفایتون حل داره که در لنه علیه فرزن نفقه علاییاله و فرزن آخر و آخر قصار و ایلا اخذر رزو جمعه بین الفرزین ول جمعه بین الفرزین قولا من اصقاق عهده همون حالا اندنا و اندهان اندهان من احل سنه پس این مسئله تأییون فضا و نیاز داره و نیاز نداره این هم اصلش در مبسوط شیخه در هیچ کتابی نیامده. این همون نقطی که ما کرارن عرض کردیم مفسوس شیخیه یک اصطلاحات و نکاتی داره که در کتاب سابقینی ایشون نیامده، و از عهد سنت گرفتن اون تقسیمی که گفتیم آد نفرو و ایلا این یک بحثیشان بود یه بحثم تأیین غذا و عدم تأیین غذا و همینکه این مسئله تأیین غذا و عدم تأیین غذا از قرن پنجم از کلام شیخ در محسوس آمده خود و در روایت هم نیامده در روایت اهل سانت هم نیامده اون چه که آمده از فتاباشم آمده این خودش عربادرید است که این مسئله اساس نداریم اینشالله فردا نتیجه نهایی بعد به رضل انشاءالله جایزه و احطیق اجرد که احتیالشونی که نگیره به احلاس که بره اوائلی در دست کنیم احتوان و